لبس سلمى به صدقه ای و روحی کله یومن لی یونادی نگا را بر من وی دل ببخشای و واسلنی الا رقم الاعادی حبیبا در غم سودای عشقت توکل نا الا رب العباد امن انکرتنی ان عشق سلمى تز اول آن روی نکو به وادی که همچون مطبه بودند دل و ایره غریق العشق بهر الودادی به پیماچان کرامت بسپریمن قرث یک وی روشتی از امادی غم این دل به واطت خرد ناچار و قرنه قابنی آن چه نشادی دل حافظ شدن در چین زلفت في ليلة المسلمة والله خاطئ